بسم الله الرحمن الرحیم سخنرانی مرحوم آیت الله حاج میرزا علی فلسفی موضوع سخنرانی امامت جلسه دهم. ده اعوذ بالله سمیه العلیم من الشیخان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله وصلى الله على سيدنا النبي ناواه نبي ناواه شافي از اون و بنواب و محسن بود الله اكبر الله اكبر الله على اهل بيت پیغمبر پاکین و رحمت الله صلواتهم اجمعين الى يوم الدين اگر انسان مال کسی را تلف کند زمینند امدن باشد یا صحبن در حال صغر باشد یا کبر باشد دیوانه باشد یا عاقل پول داشته باشه یا پول نبشه مال مردم رو که تلف کند زامن است در حالی که سغیر باشه یا کبیر باشه یه بچه داره از تو کچه را میره یه سنگ بلند میکنه میزنه شیشه مردم میشکنه. این زمانه بدهکاره برای پدر ای واجب نیست که از جیبش خسارتی را که این بچه زده به مردم بده و پدرش واجب نیست بطایی بخواد بده نداره احسانی در حق بچهش کرده اما واجب نیست بر پدرش که از جیبش این بچه شیشه مردم رو شکسته مثلا بر پدر واجب باشه که این خسارت ای رو بده نه واجب نیست خود بچه بده کاره اگر مال داره الان همین الان بچه مال داره بر پدر واجبه که از مال خود بچه بر داره و به اون کسی که مالش طلب شده و از این وقته بده و اگر این بچه مال نداره باقی میماند تا وقتی کبیر بشه و پولدار بشه واجب برش که بره هایی که زده به مردم همه هاش رو بده. پس کسی ازمشد اگر مال کسی رو تلفو کند اندن مال کسی رو تلفو کند یا صحوان اشتباهان تو با خیابون داره میره ماشینش بدون توجه نیماله به ماشین و دیگری توجه نداشته ولی بعد از اینکه متوجه شد که حالا فعلا خط افتاده به ماشین مردم این با خسارات شده بده نگه من عمدن نکردم عمدن و صحبان فرقی در مطلب نمیکنه کنه عمدن و صحبان فقط فرقش در گناهه یا اگر عمدن بکنه معصیت کرده به جهنم میره و اگر عمدن نکرده باشه گناه نکرده ولی بده کاره به مردم باید بده رو بده پس بنابراین کسی خسارتی به مال کسی میزنه مال کسی رو از بین میبره و تلف میکنه واجبه که این خسارتی ای رو بده عمدی باشه یا صحبی باشه نگه من صحبان این کار رو کردم صحبان نداره صحبان از نظر معصیتش نداره و از نزاره بدهکاریش بدهکاره باید بده. حتی اگر در حال خواب باشه تو خواب بوده پاشو زده کاسه مردم زده شکسته از آمنه در حال خواب بدون هیچ توجه و التفات و اختیار زده مال مردم رو تلف کرده از آمنه بنابراین هر کسی که مال کسی را اطلاف کند و از بین ببرد اندن باشد یا صحبن باشد صغیر باشه یا کبیر باشه آخر باشه یا دیوانه باشه در حال بیداری باشه یا در حال خواب باشه هر جوری باشه ازامه مال مردم را اگر کسی تلف کند باید خسارتش رو بده کاری ماشین مردم میزنه یه خراشی میده و زود در میره در رفتنی نیست به نیست تو در بری یا در نبی بده کاری کاری اتفاق میفته که از می شد بین که یه وقتی یادم یه مجلسی مال قدیمه بود مجلس مهمانی بود یادم اینکه کاسه کاس پشخاب اجاره کرده بودن از دکانه برای مهمانی بعد یکی از این کاسه های پشخابا گوشش گرفته بود یه جای مثلا یه لبش پریده بود دیدم یه بنده بخدایی از همون کسان صاحب خونه این دستشو ترمی کنیم توی از یه خاک های رو اینجا، اینجا اینجایی که لب پریده که خلاصه بگه این مال حالا نیست و کورونه است ماله سابقه این خلط ما بحث کردم در فرس که حالا به اون بنده خدا هم نتونه ثابت کنه که اینو شما شکستین ولی دلیم, دلیم تو سرج خودش محفوظه لا یعظو با هم و ایکا مسقال زر بتن فستماواته ولا فلعب چی از به نیست همه خودش محفوظه پس این اطلاف مال غیر موجب به زمان است. میخواد این اطلاف امدی باشه یا صحبی میخواد عرض میشواد در حال صغر باشه یا کبر میخواد عرض میشواد به اینکه که باشه یا دیوانه اختیار یا غیر اختیار هیچ فرقی نمیکن مال مردم رو که تلف کردی زامن این اصل مسئله چقدر زامن انسان قیمت این جنسی که تلف شده به مقداری که تلف شده گاهی این مسئله رو بنده کردم ولی حالا تذکران از میکنم کنم گاهی اتفاق می مثلا این ماشین ها زیاد اتفاق می حالا یه کسی میاد میزنه ماشین و این ماشین این ماشین این مقداری صد نمی این چقدر باید بده؟ خب میبرن مثلا همین یک تعمیر با میگن مثل 500مان پول تعمیر ای میشه. خب این 500صدمان باید بده کافیه نه این 500صد کافی نیست. ممکنه یه ماشینی که تص... یعنی اینطوری که اهلش گفتن. یه ماشینی که تصادف میکنه از قیمتش کاسته میشه ولی اون تعمیرش هم بکنن حتی عوضش کنند و این چیزی که ست میخورده به صورت اولش درد بیاره نو نو ولی ممکنه در اثر تصادف مثلا نزمی کنن و که وارد میستم موتورش یه ضربهی بهش وارد بشه و قیمتش کم بشه اونایی که برای من گفتن گفتن اهل خبره تشخیص میتونم بدن که این ماشین تصادف کرده یا نکرده بنابراین چقدر باید بده؟ باید این ماشین رو تصادف نکرده قیمت کنه چقدر قیمتشه؟ حالا که تصادف کرده چقدر قیمتشه؟ چقدر از قیمتش کم شده؟ تمام تفاوتش رو باید بده؟ نگه پونسد پول تعمیرش میشه این پونسد نه؟ اگر از قیمت ماشین ده هزارتومان کم شده تمام ده هزارتومان باید بده. یعنی این ماشین وقتی تصادف نشده بود مثلا از میکنم پنجه هزارتومان میخریدم حالا که تصادف شده چه هزارتومان میخرم باید ده هزارتومان تفاوت شده این این قد اومدن زرر زده این تفاوت ما بین سهیش و معیوم صحیحش چرا قیمت داشت حالا که معیزه چرا قیمت داره تفاوت مهم دو دوتا رو باید بده نه فقط خرج تعمیرشو بده ممکنه خرج تعمیرش کم باشه ولی تفاوتش خیلی زیادتر از ای باشه اللهم سلام